خاج نسیر دین توسی یکی از فقهای اسلامی قرن سیزدهم میلادی است اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان می شناسیم. درست است او فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است استاد، متفن خاج در کازمین اراق است او اهل کجا بود؟ گفتند او اهل توس بوده است به طور مسلم او اهل خراسان بود خاج نسیر دین توسی چه کارهای مهمی انجام داده است؟ او در شهر مراغه یک رسدخانه بنا کرد و کتاب ای داشت که چهل هزار کتاب آن بوده است. پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است. بله، دانشمندان بزرگی مثل قطب دین شیرازی شاگرد خاج نسیر دین بودند. آیا کتاب‌هایی از او در دست است؟ بله، کتاب علمی، اسلامی، و فلسفی زیادی از خارج نسیر در دست است. شغل خارج چه بوده است؟ او کارهای علمی انجام میداد و وزیر هلکوخان نیز بوده است.